الحمد لله رب العالمين و الله على علی سیدنا رسول الله و آله الطاهرين المعصومين المعصومین و مرت دائمت و علی دائمه مجمعید اللهم افتران و جمیع المشهرین و الحمد و برحمت از شد بحثی که مطرح بود در کلماته علم های اسلام کلا بحث سه بود چون در قرآن هم آمده در روایات هم آمده مضافاً بینیم که بعضی از آثار مثل قطر این آمده این محل بحث واقع شده و روشن شد که این محل بحث از جهات متحده بید راجب سه که یک مقضاق شدیم داده شد و بقیهش هم انشاءالله میگه کردیم که در کلمات اهلسنت یا بعدها که شیعه نقل کردن فی شده ما متعددی برای سهر ذکر بشه در عده از کلمات لغوی هم نسبت داده شده که متعدد بحثهای لغوی بحث های اصطلاحی این اینکه سحر به چه معانیس و آدم همین ها حرامن یادن دیروزی عبارتی رو بودیم که مرحوم استاد رو برده بودن این عبارت از کتاب که من خوندم از کتاب مرحوم مجلسی بود در جلد شست و سه شون هر بار شون از پسیل نکابلی نه همونم خیلی در معاقلت هم نشناهتم مرادشون کیه ایشون دوزه مساله تصیل به این مرده که نیشابوری احتمال باش باهیدی باشه مرادشون دیگه از همونم در تصیلش نمید میکنن شون ما هشتی اتفاقا نمیشیم چاک شام شده نشده قادرز نداریم یه مادم چاکنه نمیدارم معلومه در در در ای در در در در ای که این کتاب هایی که برات می‌آیند، از این معنی تناومنی صعودیان از فهرستی جلوش داره. یعنی یکی یه یکی یه یکی یه یکی یه یکی یه یکی یه یکی یه یکی یه یکی یه یکی یه یکی یه یکی یه یکی اونی که الان نمی تا حالا از جلد 63 که هم نمی کنم مرموم شیخ انسایی هم نمی, نمی این از جلد 63 اما در جلد 59 که حوالد سماوال قادمه با بیدن با با اسمت و قصد هاروش و ماروش در اونجا ایشان عبارت فخرازی رو بودن من در اونجا به مناسبت تفسیر آیه و من و محتفی و شیعاتین الانده سپنامود سلیمان و ما کفر سلیمان و شیعاتین کفرو عبارت فخرازی خیلی اون رسل صحرانی همیده از آبا خیلی یک کلامی از سید محتسا آوردن اونم تا حدید طولانیه به طولانیه به کلام فخرازی سشواست هم هست بعد کلام فخرازی رو بردم و بعدم یک مقدار به دوستقری کلامی از معموم شهر با خود این شده هم دیگه خیلی تعلیمی نداره خودمجسی هم تعلیم زیادی نداره در عبارتی که از فخرازی در زیده آیه نقل کردن همین مطلبه یعنی تقسیم سهر به هشت قسمته این مطلبی که الان آن نروم به اینه ها در کتاب فخرازی موجوده ازا این که فخرازی مثلا قسمت اولش که سهر کلدانی ها باشه خیلی طولانی صحبت کرده آنه وقت بخیره یا کتاب به حال نگاه کنن یا خود تفسیر فخرازی برای از معلومات نجومی آرگید اون چیزه منجم و نجوم و افلاق و فتا باید که خودم ها از افلاق و حرکت ارادی و غیر ارادی و نمکن بیگرد فصلهای مشفهیشون در اونجا وازیم بحث شدن که طبعا در این کتاب نیشادوری خیلی ترخیص شده خیلی مختصر شده بسید در, در کتابیشون خیلی مفصله و این که سر کنگانی هم بر سرزمه هر قصد رو اونجا خیلی مرحومتی ممنون بودن من این تو که خیلی طولانی رو برده. خیلی مفصل توضیح داده به مناسبت همین مبارکی باید تر و اوماتبی و خب ارض کردیم که ما اگر باشیم با آقاقت با نظر از آید چین تصوری کفره امکار خدا سوی برد کار حسن خدا شده این کاری صفحات ایدادیست یا این که ای بگیم خاله ورازر نیست افلاق رو خبر کردی اینا خاله ورازر افلاق کرده این خوب به همه درجاتش کفر و ما که روزی توضیح از کردیم این که احتمالاً در یک برقیه از زمان سر یک رابطه اینطوری اوائهی داشته یعنی اسمش در حقیقه سر روزی در واقع، یه زیر فکری فکیر یه یک موضوعی یه زیر داشته که برمیشته به این کار خدا و تبقیه این تصورات خورد می کن به لحاظ آیات مبارکم هم ظاهرم آیه هاروت ماروت هم ناظر به این باشه کلمه بابر هم در این آیه مبارکه به کار که ظاهرا در واقع یعنی اینجا در ایتا به جمزیدی همین یه مورد هم بابل هست دیگه دیگه بابل نیامده این آیه مبارکه هم نازر باشه و طبعه و محطب شیاطین علامون که سلیمان بلا ولا... ولا... اما که سلیمان علامون که سلیمان شیاطین که سلیمان آخر آیه که رو بعدشون بخونه نشاء الله وقت به این مناسبت بندو بشه که این مسئله بوده حالا خود آیه مبارکه خیلی ابهام داره حتی مقروم مجلسی که نمی کنه سید محتضا خیلی به احتمالات زیادی شده یعنی در خود این آیه واحده خیلی احتمالات آمده این آیه در سوره موالکه بقره هست که جزبه اوائل محتضاید نفرانه از اون اوائل اتجاد زیمنبر در من سوره بقره نظر شد آیه صد دوی سوره بقره به اسطلاح و طبعو و طبعو رو به سیده فعل ماضی رو بودن و طبعو نرخونه و طبعو چه اونها محاورت کردن زمیر طبعو هم به خاطر قرآن قبل... قبلی کاملا واضحه که به یهود برمیگرده و طبعو ما و شیاطین حالا برای اینکه مقداری روشن بشه برای بیان احتمالا از کلمه خود و طبعو نشو که به احتمال دادن اصلا توقعو در اینجا برمیده که یهود قیله که مراد یهود مدیده هستن قیله که مراد یهودی بوزن که در بابر بودن و این مراد هر دو شده یه بیه از هر همینه که مراد هر دو باشه من الان شما عرض میکنم تعجب از فخرازیه باید من از شردی نهم میکنن فخرازی با اون حوش استعدادش ترجمه که اینجا میگه آیه را هم بکنیم برای اطلاعش، این تمروش حامده کل به یهود میشیم بحث اطلاع و همده بر اطلاع نیست اشتباه کرده این آیه و خلاصی بحث کلی در این آیه که ما یهوشه ها اشاره میکنیم و باقایش هم وارد بشیم بحث این از که در این آیه مبارکه با ها و های زیادی که داره تحبیر مرمومه علامه تواسابه میریج آیی در قرآن این مهلا اجمال ارحان نداره. نزیر نداره در قرآن مهلا هزه کسا در به این یکی از راه های مهمه ام. که ما داریم اصولاً برای رفع ارحان بررسی اون جبه آیه و محیط آیه و تاریخ به اصطلاح تاریخ زمانی که محل بحثه این رو ما میدونیم یهود در مجموعه عقاقه خودش در این تورا حتی همان از که به, به انبیاء اصابه از اولش که ستون پیدایش کرد به تکلیره به انبیاء اصابه تعبوزی داره بعد نسان به از اونها هم عبارات خوبی نداره یکی از حضرت سلیمانه که همچه اسم مبارکیشون رفته در همین تورا هست که حضرت سلیمان خدا بردار سرم اون فکرسن از زنهای بطفررس از زنهای فلان نگیری و ایشون رب گرفت و اون زنها ارواش کردن نه میدونم 700 تا دا زن دارمی داشت 300 تا دا زن مطعه داشت اینطور که در کتا روش نمیده تبیر متهم در تورا تگه انجیبه مطعه داشت و خداوند بهش خشکتو این کار نکن این کار انجام داد و بعد هم اون زنها پیدا کرده و مرحله شد خود از زیاده سوری ما حتی به خواهد زنها بطخانه ترسید کرد و اون از طاعت خدا خارج. این امسانه امزن از کردم که روشن این راجع به حضرت سلیمان تو خود تورات داره اما راجع به قصه ملکه این حاروت و مارود در تورات چیزی نداره اون وقت وقتی ما موقع این آیه رو حل بکنیم راه درست و علمی شدر حقیقت همینه همه هم های دیگه که ما زمینه های علمی و زمینه های آگاهی مردم رو یهود رو پیدا بکنیم که این چی بوده اصلا صحبت تر چی بوده در باری یهود مدینه اصلا یهود کنن اصلا سه مرحله وجود داره. یکی یهود زمان هست موسا و حالا اصلا بردیشان یکی یهودی که در باور بودن که دیروز عرض کردیم که نابود از اینا بیرون که از فلسطین از همین بیش از مقدس ساکن بابل شدند و یه تمدن علمی خانگی یک مکتب فرنگی خوبی در بابل جا گذاشتن که مثلا تلمود بابلی معروفه مثلا میگن تلمود بابلی به لحاظ انسجامش منظور نیل نه اون کنن و مطالبش از چه میده تلمود فلسطینی بهتره چون در فلسطین غالبا یا ها در مراز ضربه و آزار بودن اما در بابل آرام بودن تلموز بابلی تلمو درس کردم دیدون چند کتاب میشناس مشنا یه لفظ عبری قول آیان لغت ادری فرقش با عربی همی خودم دوست ادری و عربی خیلی با هم نزدیکن مشنا یا مشنا در لغت ادری معناه مکرر درگومی که همین کلمه در عربی المسننه است. این روشون المسننه تورا که می رسدن تورا این بود که مشتمل بر احکامه البته این احکام به چیزی شاید در حدود مثلا هزار سال یا کمتر شهستر سال توسط بزرگان اخبار و رنگیون از علمویت مصریه بود شهر داده شد شرح هستم معروف است به تلمود تلمود هم ظاهرن من امواندالله گفتن من این اینطور تقصیل کردن کلمه تلمود و به عربی من احتمال دارم تعلوم باشه به تعلیم نکنه برخواد و سابران ملاقی از کلمه تلمیز باز عربی از همینه گرفته شده تلمود و تلموز منعه کسی توی آز میگیره که ها در عربی تلمیز این خیلی دوات عبری و عربی نزدیک که همه بقید یک نوع شده باید توضیح داده بشه که مثل هم بشه حالای بلا تلمود اون وقت یک از فرهنگ فکری جناب یه بودی ها ما در همین دوران تلمود مثلا تلمود بابلیه. خوب بکنه مثلا همین بحث زغرنه رو بیشه. علمای اسلام بحث طولانی کردن این مولانا عبال کرده آزاد که مسلمان سنی بود وزیر معارف هین بود ایشون کتابی داره راجع به اسکندر کبل یا زغرنه ایشون با خودش داره اولین این مشکل زغرنه اینجا بی هر از اینجا وارد میشه میگه ما اصلا برای تغییرات رسی ذلقرن ایمی بفهمیم باید ببینیم این اصلا که چیزی و چه حمر ناظر شد در حالی که یهود اون چند تا سوال اسئله مرت یعنی الان گفتن سعی به همراه باشی ارتباط واقع با داشته باشی میتونه جواب بده مثلا این ایشان ذلقرن اول که نماز از این زاویه وارد میشه که چرا یهود ذلقرن مثلا میکنه چرا هم اصلا دیگه این میگه این حتما در فرهنگ یهود یک رابطه خاصی بین زغنه و یهود وجود داره این از این راهوانه که میشه که مرحوم علامه تبا طب تباییه اونکان میرونید در تفسیر علمیزان همین رعی مولانه ترام و ترامه آزاد قبول میکنن ایشون از اینجا باید میشه و این که که میگی ایشون میگه زغنه کروشه رابطه با یهود داشته من عزیز مقدمه عزیز مقدمه. این رابطه در یهود بابه چون در از این که نبوخن اینا رو خارج کرد از فلسطین از بیت المرده برای این که خود نکرد تغییر این اسم او ارشاریمه. اسم اون ارشالیمه اسم قبلیش ارشالیم ارمان چون این بیت المرده سیدی که الان اسمش ارشالیمه اسم به اسطلاح اسرائیلیش و ایرویش ارشالیم از اونجا که اینا رو خارج کرد فرستاد به بابل. در از مونده این کرش که آمان گرفت یهوی را آزاد کرد اجازات برگشتن به بیت المغز لذا برای او یک جلالت شنی یهود قائل بودن خوب دقیق بکنید این کدوم یهود مال تلمود احضه تلمود یعنی بابر نه یهود اولیه که وارد تلمود خواهده سپس بودیم خواهیم <تصفح> پس ما در فرهنگ یهود خوب دقیق بکنید یه سری مطالبی داریم که برمیگرده در درست موسا یه سری مطالبی داریم که برگرده در حق تیمود به اسطلاح ما تیمود بابلی که چیلی در حقیقت دو بعد از اینکه که اینها را از بیرون ویور میکنن میان توی بابل اونجا مکتب بابل را تشکیل میدن طبعا اونجا هم بر خودشون اعتقاضاتی درستشون وشی یهود اعتقاضشون این بود که این یهود ر چون در رابطه با یهود بود یهود میدونه که کروش اینچینه اثر دارمون داشته این هم از کجا از یهود بابه لذاب در این رو محیار پیهمبر گرفتن که اگر پیهمبر ونگه الهی باشه میتونه قصر زودنین رو برای ما حفایت بکنن چون میدونستن که پیهمبر بیچی یهود که رو بودن که نیاد جو گیرم این هم از اثران درونی خود یهوده حالا این اینجا من چی ما خواستم مثلا من هدفم این نبود که برسیده رو بردن مثلا ببینید ما در افکار یهودی ها یه چیزهایی داریم مربون به تورا مثلا این که سلیمان در اواخر سر عمرش کافر شد و بطخانه درست کرد و زنا برای سرسی بود این تو تورا ده. یه چیزی مال یهود وابه که این تو تلموده به ما الان راجع به این حارون و مارود تا مراجعی که من کردم، تو تورا چیزی نداریم دلکه. لذا عادتا و ما اونزره علی ملکه به بابل هاروت و, و مارود احتمال داره جزوه اندیشه ها و از کار یهودی ها مال بابل باشه یعنی مال تلمود باشه تلمود باب ببین متأسفانه من تلمود از ندارم تا وجهی که من نگاه کردم شو نگاه من ناقصه این مصادری ای که من احتمال میدادم راجع به این قصه سر تلمود چیزی نکردم. و احتمال سوم این یه چیزی بوده بین بعضی از یبود مدینه این اصلا رفت به تلمود نذشته باشه این با این که قدم بابوشیه بعدم از صدیه کرامی نه هم چون این همه همه چون تو واقع داره خیلی ابهام داره من فقط مخاطر زمینه یه از بیاد دقیق میکنیم پس بنابراین اینه که نوشته پیله که مراد یهود زمان رسول اللهه بعد پیله که مراد یهود قدیمه قیله هر دو میگه میگه زاهر لفظم هر دو رو این نیست نه برد که کلامی از صدیده همون کنه که توضیح میدونه ترجم میکنه شو میگه یعنی این که آیا مراد از اتبعو فائل اتبعو یهود مدینه باشه یک چیز نتیجه میگیریم کلمود باشه یک چیز نتیجه میگیریم هر دو باشه چیز دیگه نتیجه میگیر. احتمال بسیار قوی داره یعنی شما ما وقتی الان در مسادر یهود ایرونی میبینیم احتمال خود دق چون از که در شوارد قبعی حاکیت که در مدینه یهود معروف به سهر بودن چون نگفتن که پهل کتاب هست اینا نوشتار دارن کتاب دارن و یک مقدار سهر اونها آمیخته با سهر بود از که در لغت عربی خود تهر به معنی سهره مثلا آله حاضر اگران مصبوب یعنی مصبوب دارن خود عرب. سریع بخاری ها کرد از خود سریع بخاری هم نهارو کرد. مطبوب یعنی مصحول و در مدینه این بوده پس به من به نظر من میاد که برای فهم آیه خیلی مسئله مهمه یعنی همونطور که مولانا اول کرام آزاد اول کرام آزاد از راه تحلیل تاریخی رسید چون این آیه خیلی ابهام داره شدید به قول مرموم آیه که در هیچ ایک از آیت قرآن آیه ما و نکته عجیبتر در اینهای احتمالات زیادی گفته شده مثلا همین اتبعه از اول از کلمه اتبعه رو یهود زمان رسول، یهود سابر ما تطلو تطلوب, تطلوب معنای به معنی به اصطلاح خاندن و تلاوت گفته شده به معنی کذب هم گفته شده تطلوب شاید این تقریبه باشده شیاطین گفته شده شیاطین انزی گفته شده شیاطین جنی گفته شده هر دون اما ملک سلیمان این ملک این یعنی چی و این چی در تقدیر داره دو ستا احتمالی و ما کفر سلیمان باز ما کفره به چی آیا معنی شیده که سه که مثلا بعد خواهد آمد این کفر بوده ولکه نه شیاطین کفر و باز بحث دیگه که شیاطین اصلا یه تکلیف دارن جن که دارش تکلیف دارد آیا شیاطین تکلیف دارن که در اونا کفر بیان مراد از کفر در شیاطین در اینجا یا علمون اناس از سه. این شیاطین هستن که به مردم سه یاد میدن یا یهود هستن که به مردم سه یاد میدن و ما اون این ما چیه؟ نافیه است؟ موشوده؟ حالا تقدره که موشود باشه به چی برمیگرده؟ یا علمون الناس از سهره و ما اون ذره از یه عصر به سحر به مردم یاد میدن سهره با اون که در بابل بوده و گفته شده و طب اون ماطلت لشیاطین علامانی که سلیمان و طب او شیعتن ما اون ذره علامانه که عصره به اونجا باشه یا اصلا ما یه نافیه باشه بله علالملکین گفته شده ملکه قرائت کردن ابن عباس ملک گفتن اینا فرشته نبودن دو تا پادشاه بودن در بابه یکیشون هاروت بوده یکی ماروت شده ملک خوندن اما خب قرائت مشهور ملکه یعنی فرشته باز اختلاف کردن اینا واقعا فرشته بودن چه از آسمان میذارن اول معروف یا اینا مردمان پاکی بودن ملک بودن مثل فرشته است. افراد سالهی بودن که مثل فرشته بودن بابلش بابل اختلاف هست بابل معروف همون هنده هست این معروف میشه ما که بابل میگیم فیلم چیزی اینطوره که گفتم طریقه تبریه یا تبرستان اونجا هم بابل بابل داشته حالا که معروف که بابل بابل هم نیست تازه اسم قدیش هم بارفروش بود بعدها بابل بذاشتم هاروت و ماروت هم همین که این واقعا هم زبط کلمش هاروت و ماروت بخونید یا هاروت و ماروت بخونید و ما بعد هم همین صحفت این چی بوده؟ و ما یعلمان من احده واز همین عطفه با ما یعلمان کلمه یعلمان گفتن تعلیم که معنا نداره این اعلام بوده و ما یعلمان من احده به کسی اعلام نمی کن. حتی یهول ها نما نحن فتنه حالا فتنه در جانی کفته به معنی مهنت مشکل درست می بر شما فلا تکرد فا یه تعلمون این یه تعلمون هم به یهود می که اول کلام بود یا به اون ناس می زنن مای, مای و فرقونه بهی بین المرع و زوجه نحوه تفریق بین المر و زوجه چی واقعیه یا نه می آمدن بعضی اینجور گفتن مرد رو گمراه میکردن مرده مرد کافر می شود. بعد میگویند که چون نمیشه شوهر کافر باشه، زن مثلاً دیندار باشه، از اون جدا میکردن. کافری که شبیه و ما هم بزاری نبی الله به اذن الله. این اذن الله چیه؟ از اون میگه که, که, که این یوفرگونه و که ظاهرش که این یوفرگونه بیهی به و زوجی کار بدیه. از اون میگه که این ما هم بیهی ما, ما هم بزاری اینا از ذرایت می‌تونه سامعی به ازند لعه ازند باشه شما چیم کار خوبه؟ کافیه. امروز قرنتک از هر یک این آیه از جایی به این آیه از کهون کلمه اولش خود مرهم آیه تماشاواری به نظر من از اثباتشون نگه دار تدریشاتی بله. و یه تعلمن ما از او این یه تعلمن به من اینکه نه این فیض میکنه. برد می کنم ولقد علمون شراح ما لهو از اون هم می دونم کسی که این کار رو بکنه ما لهو که لآخرت من خلا ولده سماشر و دی انفرس هم لوکان رو می اگر می دونست. از اون هم می گه لقد علمون از این هم می گه لوکان رو یکی از آیات بسیار مؤذر قرآن در حقیقت این مشکل شده بعد مروم های تواصلی به استثنان یکی دو مرد که ما اعز کرد قبلی ما در این یک ضرب احتمالات کرده مجموع شده یک میلیون و سی ساد و شست هزار احتمال در این آلومان مجموع احتمالات رو ضرب کرده به این نتیجه رسیده که احتمالاتی که در داده میشه یک میلیون و سی و شست هزار احتماله البته سه گفته باید اجایه و قرآن با همین احتمالات بازم آید کار در خیلی تشنده زیبایی عربیش محفوظه از کردن میشه خودت دلداری این سوالاتی یعنی اصلا فایده نداره یعنی. نه حالا غیر از فایده اصلا از خود خدا چرا اینو صحبت می‌کنه فایده چیزی اگه ما خیلی وقت دیگه داریم می‌زنه خب ببین سونیا باز بالا رحمت خدا. کنه آقای های طاووسی نه بیشتر از این جنامت گفتن خیلی خیلی چه کرد دلش کرده برداشین هم یه بحث فلسفی داره راجع به حقیقت سر ونه بحث علمی داره که باز نشین اصلا هم که اصلا که من قرار این بود هدف من از سوال از بحث این بود اولاً درفع از ما ابداع احتمال بکنیم بعداً ترجیح بدیم خب این سوال محدود که چه هدفی در آیه و امزرناه و بلسان عربی مبین یا مثلا چه هدفی ممکن از این آیه باشه که خداوند یک کلامی میره بیاره که بحث در موسیقی بنده مثلا 6-7-7-1 میلیون رو 660 هزار تا احتمال هست حسابات این با یه مبارکی اول اون از این کمتر که 17000 تا کتاب لغوی فی که مثلا زالک منتظره شرط حساب خبر بشه زالک منتظره شرط جواب بدل باشه اثر باشه, باشه. یه احتمال نحوی دادن و همون آخره لاره خبر باشه فیه بود خبر داره خبر باشه لاره رو در منتقین بودا بود خبر ثواب باشه لمنتقی خبر شارق باشه لمنتقی مت یک احتمالات اعرابی یه در دیگه هم سالت همین بحثه احتمالات اعرابی در این احتمالات اعراویه تا اونجا که من دیدم اولی کسی که نوشته این مولا سلطان گنابادی هست در این کتاب بیان سعاده ایشون این احتمالات عوضه ده هم از زیلهای مبارکه یک میلیون رو منازم 250 هزار احتمال اعراوی تو همین یک ست آورده رادکت کتاب داره بزید اون هم ضرب احتمالات کرده حالا اون احتمال اعرابی چون نحوی خیلی مشکل نداره. اما یک میلیون و سی و هزار احتمال در هفت سه سه مبارکه و با بعد ما هم حالا از که بعد نتیجه نهایی اصلا چه نکته ای داشته اون به ذهن من میاد که این که آیونی محضابی و همون قبائلی که ما حفظ کردیم رو جدا جدا من کردن، خود ایشون خود آیه تواصل که بود مثلا 5 تا آیه 4 آیه 2 آیه 1 آیه یه آیه ایشون این دو تا آوردن همین بعد رو من فکر می‌کنم که بعد از اینکه پیامبر به مدینه سفرش رو برده در صحبت‌ها اکرام مدینه، در مدینه بیشتر طرفین صحبت‌ها شده مخصوصا اصرار رسول الله برای این که اصاف پیغمبر در تورات بوده با اصولاً ادلیه از یهود به مدینه آمدن به خاطر اینکه منتظر بودن پیغمبر مبعوطه به رسالت میشه این یه روایت زیادیست من دیگه این مخون واردون بخشم تول میگه ورده همون سالهای اول دومی که از بزرگان یهود مسلمان میشه مخیره مخیره مسلمان میشه بعدم به نظر جنگ برد بعد از بردونه جوی میشه. پیغمه همه مخیره سابه بال چون خود مفهوم سابه که از مفهوم دینی عالیه در مقابل اصحاب یه اصحاب یه اصحاب یکی همه یعنی سه تخصیم, تخصیم. در دخشیم بعد در بیان یهود اون یکی دو به سابه به این کار هست مخیره ده و هفتا هم بازداشت تقریبا بین همین تقریبا میشه که آخر بقیه تا حدود مسجد غبانک این هفته باب رو به پیمنبر بخشید کیه که از موارد اختلاف هم بعد از رهبری پیمنبر این از زهر و دستگاه خلاف همین حوالت سبعه بوده که از مسائلی که محل خلاف بوده حوالت سبعه بوده اینی هم که میگن بعد از رهدر پیمنبر و بکرستال امال از زهر و رو پس صدق بیان کرد احتمال میدن مراد همین حوالت سبعه باشه فقط فدک حدود 5 روز بوده تا براش حداقل 5 را بود تا برگردن اینطور نبوده که تنه سریع بیرون بکنه. یکی از موارد اختلاف همین حوادث صرعه بوده که اینا تو خود مدینه بودن حالا من میخوام وارد این بحث بشم عرض این که پیغمبر یه مقدار زیادی از مناظراتشون و صحبتهاشون با یهوده باشه به یهود شدن من داشت طریق بحثایی که خودشون دارن یک نوع به اصطلاح انتشار یهود بعد از حذف یعوب تدریجا به, یعنی به طرف جنوب یعنی فلسطین در نظر بگیریم به طرف جنوب تقریبا فرض کنید مثلا ساحل دریای صحرح لغزه یک تکه کوچفت مثلا 150 تا 200 کیلومتر 100 کیلومتر جاده مختلف در جای مختلف اینها به پایین اومدن مخصوصا چون حضرت ابراهیم اسماعیل رو که از هاجر بود و از این یهودیان یعنی از صادر نبود این رو اون در مکه که قرار بود اون در که جدا باشه و یا و شما در غرب ایشون و بعدم سبب انتشار بسیار محشو و مکتب بسیار جای خودشو پیدا کرد یهود ظاهرا رو به جنوب میان که ادی زیادشون ماویر مدینه و همین فلسطین اینجا صحرا هست من مثلا با تا نه فلسطین تا قبل گردو تا شام صحرا وسیع اینا توش قریه قریه و روستا روستا بود دهره بود این, رو این و قرآن بخسن. در صراحت این مجموعه صحرا رو قرآن قران در دروازه قرآن بیشتر این قریه هاش بس یهودی بودن. مسیحی در اینجا نداشت. بعد به دی زیادی ادم از یهود در مدینه ساکن میشن که صدق عشیره بودن. بعد این اول به ترتیب اگر شما مثلا که می‌بینید رو به طرف به اصطلاح پایین دروازه اون مقابلتون همین قریزه است. بعد به نزدیک و به قرنه. بریم تا طرف به مسجد غابا سه اشیره مهم از اینها اونجا بودن که هر کده هم یک حسابی داشتن و یک مقدارشون هم توی خیبر بودن که روزه هفتش قلعه بود آب خوبی داشت خیبر رو چیز کرده بودن با خیبر بود دیست پنجای کمه دیست چست بود با مدین فاصله بود یک مقدارشون هم سیچه اونوتر بودن که فدک بودن فدک جزه خیبر جدا بود بیامون به فاصله بود سیچر که میزون اون ترفتن فضر بود اون هم دوستا قلعه بود خب این کل ترکیب جغرافی یهود بحثای راجعه به این جهل وحث بی راجع به این یهود مدینه هست من در یک کتابی این سفر ای که عمره بودن و حج بودن کتابی دیدم اسمش هم امتوزه ندید اونجا ادعا کرده از قول یهودی ها که این یهودی و مدینه هم خیلی اون یهودی یهودی نمیدونن یه یعنی مثلا خی حالا من منشون خیلی اطلاع ندارم واقعا در و خیلی وقت اطلاع پیدا کردن این, این قسمت معلومات ما خیلی کم و خیلی هم ضروریه قسمت و خیلی هم کم معلومات ما از این عبارات معلوم میشه که یهود مدینه دارای یه خصوصیاتی بودند اخر در واقع در فتع به تورات فتلوها از این عبارات معلوم میشه در تاریخ یهودان این هست یه نسخه نسبتا معتبر از تورات پیش یهود مدینه بوده. و خود یهود معتقد اند که چون یهود قبل از اسلام به 500 سال 600 سال،, سال اینا هم باز از یه جور مجلس بیرون میکنن تیم روایت اجازه به محض دور دور گذشته پرستار کرده بودن و در کشور مسیحی همیشه یهودی ها منفور بودن چون در افکار خودشون در تورات یهود در مسیح بد میگفتن این در دیجال مسیح رو دیجال میذازه لذا با مثلا حتی تو اروپا بودن به دستور پاپ یا کشیش‌های گنجو بودن اینا رو آزار می‌دادن بیرون میکردن میکشند و مخصوصاً تلمود رو چند بار سوزون داشتن دارو در تاریخ یاد می‌دیم که مورد بحثش باشه و تلمود رو خیلی بهش اعتنا داشتن این مسللم تلمود رو و مخصوصاً تلمود بابلی مثل که اینا در اصل ما اوج ایمنی بابلشون قوی‌تر بود راحت‌تر بودن اون گرفتاری و آسیب ها بیشتر مال اون فلسطینی ها بود که در بهتون مغلست بودن اینا یک کمی آرامتر بودن خیلی من در یک جایی از کتاب که یک نسخه تلموده تلمود رو که آتیز درموزن مسیحی ها نوشت دو میلیون و پونسد هزار صفحه بود فیصل نمی کنم شده من آدم یا اون اشتباه نوشتی یا ما بود؟ خوندیم در یهود یک جایگاه خاصی داره چون تلمود چهره میشناز و میشنا به عنوان الموسنای احکام کتابه از تلمود و میشنا در اسطلاح یهود تغییر به توراد شفاهی میکنن. ظاهرا ظاهرن از خود یهود هم باز در حقیقت میشنا و تلمود اشکال داشتند. دو توراد توراد کتبی بوده اونه که برنس موسا ناظر شده یک طورات شفاهی هم داره. این مطالبه که من اعزیم کنم خود من هم مطالبم جست و گریزه از خیلی منظم نیست من میگم که شما انشانا مراجعه کنیم چون ما احتمال میدیم که یهود مدینه داره یک خسرت فکری خاصی بوده یهود مدینه چون ما داریم در میانه یهود که ادهیشون این اعتقاد رو به تلمود نداشتن این رو بانوان طورات شفاهی حساب میکردن اونه که اعتقاد یک از کنم کراه عمر هم که به مدینه چون عمر آمدنشون مدینه قبل از فیغمبره اده از اون سلمان ها قبل از فیغمبر به یسته با آمدن قبل از هیجه فیغمبر بعد فیغمبر هیجه فرمونه در سول داره. جد در کتا سیره نجام حتی تاریخ ترایی هم داره لیستی داره کسانی که ها جمعه لنمدینه قبل رسول یکیشم در جمعه دل آمده حالا این وقتی که آمده این مسلم خود و سومیان نویشتن عبری را هم برد میده توراز را هم به عبری میخونده اینا نوشتن نویشتن شده دقیقه من این را نکات فنیش را میگم و احتمالی که من میدم خوب دقیقه بگانی شاید ادهی از یه یعنی مدینه به تلمود و میشنا خوشعقیده نبودن به میشنا خیلی خوشعقیده نبودن چون این من جهه دیدم تو کتابای یه بودی که ادهیشون به نشنا خوش عقیده نبودن تورات قبول داشتن احتوالی که من میدم چرا؟ چون وقتی که در زمان آمد تره نوشتن سنت سنت رسول الله و تدبین سنت شد که علی ابن عبی طالب اصطار داشت به سنت رسول الله رو جمع بکنی این کتابت الحدیث نیست این مدت جمع سنت رسول الله مثلا سنت وضوع رسول الله سنت سلاف رسول, رسول الله سنت حج اینا نوشتانش بکنیم امر داره که مدتی بند کرد بعد آمد رومنبر گفت که اینا ما گفتن که سنن رو جمع بکنیم ولیکن نه اون مشنا که مشنا اهل کتاب اهل کتاب هم مرادش یعنی به میگه اگر سنن رو برای جمع بکنیم مثل مشنا چراستن یعنی هم تلموت رو سنی کنی کنید این شده اصل من ولذا من احتمال میدم که یک طایفه از یهود در مدینه بودن که خیلی همشون که از نظر جنسی یهودیشون خیلی یهودی نبود فکراشون با یهودی دیگه فرق می‌کرد. هم جنسشون خیلی جنسی یهودی نبود. خیلی درست بود. هم به نظر من یک درد افکار می‌داشتن. خب این دقت بکنید. این احتمال رو من میدم. یعنی اینی که عمر میگه مشنا تا اهل کتاب این تفکر کلی اهل کتاب نبوده. احتمالاً اون چند چون اون عبدالله سلام هست قبل احوار هست اونا دارن که وقتی عمر مرد آمد داره عمر تر تحضیحات گفت یا عمر کنز فلان بعد گفت یا عمر اصابش هم در تورات آمده مرگن کرد از عمر چون با اینا رفیق بود عمر با این اهل کتاب اینجوری بفید این من میگم برای یک نکته احتمالی که ما میدیم اینی که از سودی هم شده این وقتوره او به کل یهود نمیخوره سر این که مثلا هواست باید یک میلیون و سی صدر ازای داده ذهنشون رفته تو یهود و شواهد تاریخی رو فکر نکردن نیم خواهدان منوزوازیم بست بشن به نظر من میاد این نمال یهود زمان از توی موسا هاست نمال یهود بابله که 2500 سال قبل بوده این وقت تبروه است که پیغمبر از عده از یهودی های زمان خودشون توی محیله می کردن این خیلی لطیقی نفید این هم که فخرازی بیه حمله برای اطلاقش بکنیم اطلاق رو نظره. شاهدش در طور کلی دقت بفرمایی اینا دقتی ای که می کردن در این سوره بغره به این سوره بغره از آیه چهه یا بلی اسرائیل از کرونه امتیگه از آیه چهه الله که ام انتو حاله کن و اوفو به عهدی اوفو و ایای هم از این آیه خطاب به بنی اسرائیل این هم تا آیه 103 تمامش اوضاع بنی اسرائیل به شما چون ما این کار تمام تمام اینا دقت تنشب میکنم از های ثواتبای و دیگران یک به این آیات رو نکردن از آیه چهل چون میشه خطاب به یهود و بنی اسرائیل تا این آیه که من خودم صد و و تا آیه بعدیش و, و نظام در آیه صد و, صد و سه اینجوره انهم آمنون هم اینا یعنی یهود یعنی نبینه یعنی وطقو لمسو من اندلا خیرون لوکان دقت کنیم؟ می‌گن خراج روزه هیچ از شدی نه erkene مثلا شدی جزو تابعین تابع تابعین این حسابا معلوم شده حتی قدما چقدر ها رو به کار بردن که بعدی بعدی‌ها توجه نکردن برادران نوشته این که مراد از اتباع یهود مدینه باشه یا مطلق یهود باشه این در تفسیر آیه که مؤثره آیه قدش که تدیگه اصلاً اگه آیات آدم بخونه خیلی دردیه کلاً کتاب به یهود از آیه 40 چون دیگه این نه فخر ازو نه من این مقل گفتم باز آیه قبل از این آیه قبل از این ولما جا هم رسول من اندلا این جا هم یعنی یهود مهینه ما رسول من اندلا مسد ملما مهم و ایشون آمند گفت تورات اجمالا درست تصمیق توراد کرد نبد فریق من الذین اوتو کتاب کتاب الله و را ظهوره گروهی از اینا نگم همه همه در قصه نبد فریق و... تعمل شد نبد فریق من الذین اوتو کتاب کتاب الله این اوتو کتاب اول تورات کتاب الله قرآنه نبد الذینه نبده فریقنون الذین او کتاب کتاب الله لران ظهوره که انه لای علمون این وطبعون به اون فریقنون هم میخوره درسته این قبلی این رو از فخرازی از صدی نرمون خود فخرازی همشون نکرده خیلی کلام دارده ما که قرم درگوه به ما تو زهنیتشونو آمده وقتا وقتا وقتا وقتا و یهود کرده این برم ماجه ها رسول من اندلا یعنی رسول مد... یهود مدینه پس دیگه دنبال تلو... از کردم ها در تورا تلموز که که را پله نگردم تلموز نگردم معلوم شد این قصه ملکین و حالت و ماروس یک ای بوده که ادهی از یهود مدینه قائل بودن روشن شد نه در زن توراته نه در زن تلموده یهود بابره تلمود بیمن نه بز فریق من و اوتوالکتاب کتاب الله قرآن رو برای ظهوره که انهم لا یعلمون نوزه و تبع او ماتفد و شیاسی. اون فریقه از بوده اون فریقه از یهوده این که الان کباسمه گیش کده و خایده این کسی اون راه باده میشه گیش میشه دیگه. میشه یک میلون سر شست هزار احتمال و سر این که برآن همون به سر خیلی صحبت نمی کنه چرا گروه یهود مدینه بودن تا من چون این عقیده باطل بوده شاخ باسن صلاح دیناسه به اجمال برگذار بکنه شما هم الان اینطوری مثلا میگه ادعیه در این جامعه الان کارهایی انجام میدین اسم نمیبرید بس میگه دیگه چون خیلی ارزش نداره شاید سر اجمال فقط اینکه یه آیه وارد هست در ذهن یولی سر شت هزار احتمال بس پیدا برعکس این ادعیه از یعن که نوده فريق منهم کتاب الله و را اینا دنبال شیوه رفتن رفتن دنبال کلماتی که منسوب به بابل و ملائکه و اینا پس این در فرهنگ یهود مدینه بوده اونم هم نه همشون ایدهی که از که در فرهنگ یهود مدینه به لحاظ های مختلف دارای اشکاله ولی به هم نگاهی که فقط با میگم که وارد تفاصيل بیشتر بشم بی خیلی طول میکشه بعدش خلاه به مراجعه ان شاء حل بشن. بعدا بقیه ارکان سهر